تنجام کلید سلامتی نحوه صحیح مصرف میوه است. کامل ترین وعده غذایی میوه است. هضم آن به انرژی فوقلاد کمی نیاز دارد و برای بدن بسیار مفید است. میوه دارای قند است. قندی که به راحتی به گلوکوز تبدیل می شود و 90 تا 95 درصد آن از آب تشکیل شده است. یعنی در عین حال که عمل پاکسازی را انجام می دهد، خاصیت غذارسانی به سلول را نیز دارد. تنها مشکل میوه این هست که افراد نمی دانند چطور باید آن را مصرف کنند تا مواد غذاییش بهتر جذب شود. همیشه باید میوه را با شکم خالی بخورید. چرا؟ به این خاطر که در مده هضم نمی شود و هضمش در روده کوچک اتفاق میافتد میوه به سرعت و تیه چند دقیقه از میده به روده کوچک می رود و در آنجا قندش آزاد می شود. اما اگر گوشت یا سیب زمینی یا نشسته از قبل در مده وجود داشته باشد، میوه در آنجا گرفتار می شود و به تدریج فاسد می شود. آیا برای تان پیش آمده که بعد از شامی مفصل بلافاصله میوه بخورید و سپس تمام شب را احساس ناراحتی کنید؟ دلیل آن این است که میوه را در وقت مناسبش مصرف نکرده اید. بهترین روش مصرف میوه خوردن خود میوه یا آب میوه تازه است. از کنسرو میوه استفاده نکنید. زیرا اکثر میوه ها هنگام بست بندی حرارت میبینند و ساختار اسیدی پیدا میکنند. می خواهم از شما سوالی بپرسم. شما غذایتان را در روز با چه چیزی شروع میکنید؟ برای صبحانه چه میخورید؟ آیا فکر می کنید است که از رخت خواب برخیزید و میدهی خود را گرفتار غذاهایی کنید که مجبور شود تمام روز به هزم آن بپردازد؟ البته که نه. باید برای صبحانه غذایی بخورید که هزمش آسان باشد. علاوه بر آن، به قند مورد نیاز شما را در طول روز تهمین کند و همچنین بدنتان را پاکسازی کند. با این اصاف تنها ماده غذایی که برای تا می میوه تازه یا آب میوه است. من به شما این است که تا ساعت دوازده ظهر تنها میوه بخورید و به بدنتان فرصت پاکسازی سازی دهید. کافیست ده روز این کار را انجام دهید و نتیجه اش را به وضوح مشاهده کنید.